فاش میگویم و از گفته خود دل شادم بنده اشخم و از هر دو جهان آزادم تایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراغ که در این دام دامگه حادث چون افتادم من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی بور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم که به بخت مرا هیچ منجم نشناخت یار از مادر گیتی به چه تا لعاظادم تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم با می‌خورد خون دلم مردمک دیده سزاست که چرا دل به جگر مردم دادم آ کون چهرهی حافظ به سر زلف ز عشق ور نه این سیل دم آدم ببرد بنیابم